عیسا به یکی از قایقها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت در پایان صحبت به شمعون گفت به قسمت‌های عمیق آب بران و تورهایتان را برای سید صید آب بیندازید شمعون جواب داد ای استاد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 به طوری که نزدیک بود، قرق شوند. وقتی شمعون پتروس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است، پیش ایسا زانو زد و عرض کرد، ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطا کارم. او و همه همکارانش از سیدی که شده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی، نیز همون حال را داشتند عیسا به شمعون فرمود نترس از این پس مردم را سید خواهی کرد به محض اینکه قایق‌ها را به خشکی آوردند همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند روز ایسا در شهری بود از غذا مردی جزامی در آنجا حضور داشت وقتی آن جزامی عیسی را دید به پای او افتاد و از او کمک خواسته گفت ای آقا اگر می میتوانی مرا پاک کنی عیسی دست خود را دراز کرد او را لمس نمود و فرمود میخواهم پاک شو فوراً جوزام او برطرف شد عیسی به او امر فرمود که این موضوع را به کسی نگوید و افسود اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی را که موسی معین نموده است تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد اما عیسی بیش از پیش در تمام آن نواحی شهرت یافت و عده زیادی گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی‌های خود شفا یابند اما او به خارج از شهر میرفت، تا در تنهایی دعا کند. روزی عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقه فریسی و آموزگاران شریعت که از تمام روشته‌های جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند در اطراف او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بیماران را شفا میداد. در این هنگام چند مرد دیده شدند که مفلوجی را روی تختی می میآورند آنها سعی میکردند او را به داخل بیاورند و در برابر ایساب به زمین بکسارند اما به علت کثرت جمعیت نتوانستند راهی پیدا کنند که او را به داخل آورند بنابراین به بام رفتند و او را با توشک از میان سفالهای سخت پایین گذاشتند و در وسط جمعیت در برابر عیسی قرار دادن عیسی وقتی ایمان آنها را دید فرمود ای دوست گناهان تو بخشیده شد ملایان یهود و فریسیان به یکدیگر می گفتن این کیست که حرفهای کفرامیز می زند کی جز خدا می تواند گناهان را ببخشد اما عیسی افکار آنان را درک کرد و در جواب فرمود چرا چنین افکاری در ذهن خود میپورانید؟ آیا گفتن اینکه گناهان تو بخشیده شد آسان تر است؟ یا گفتن اینکه بلند شو و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد به آن مرد مفلوج گفت به تو میگویم بلند شو تو شک خود را بردار و به خانه خود برو او فوراً پیش چشم آنان روی پایهای خود برخاست تشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را هم گویان به خانه رفت همه قرد در هیئت شدند و خدا را هم کردند و با ترس میگفتند امروز چیزهای عجیبی دیدیم بعد از آنکه عیسی بیرون رفت متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل وصول عوارض نشسته بود به او فرمود به دنبال من بیا او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت لاوی برای ایسا در خانه خود مهمانی بزرگی ترتیب داد اده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با ایسا و شاگردانش سر سفره نشسته بودند فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند چرا شما با باجگیران و خطاکاران میخورید و می عیسی با آنان جواب داد تندروستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه بیماران محتاجند من نیامدم تا پرهیزکاران را به توبه دعوت کنم بلکه آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم در اینجا سمت اول این نوار پایان می‌پذیرد برای ادامه شنیدن کلام خدا لطفاً نوار را به سمت دوم برگردانید آنان به او گفتند شاگردان یحیا اغلب اوقات روزه می‌گیرند و نماز میگذارند. شاگردان فریسیان همچنین می‌کنند اما شاگردان تو می و می‌نوشند عیسی به ایشان پاسخ داد آیا شما می توانید رفقای داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روز گرفتن مجبور کنید؟ اما ایامی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد، در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت. همچنین برای آنان این مثل را نقل برمید. هیچ کس از یک لباس نو تکی را پاره نمی کنند تا با آن لباس کهنه ای را وصله کند، اگر چنین کند هم آن لباس نو پاره می شود و هم وصله نو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین هیچکس شراب تازه را در معشقهای کهنه نمی ریزد. اگر بریزد شراب تازه معشقها را می شراب به هدر می و معشقها نیز از بین خواهند رفت. آری باید شراب تازه را در مشک های نوریخ. هیچ کس پس از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی چون میگوید که شراب کهنه بهتر است.